بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبئائي خاتم النبيين وآله وصحبه اجمعين اما بعد سبومين درسات از درسات شرح تائيه ام البيري از علماء اسبانيا ام اندلوس ششومين بيت از عبيات تائيه ابا بكر اندعوتك لو اجبت الى ما فيه حظك لو عقلت ابو بكر گفته شده فرزندش گفتیم که این گفته ضعیفه گفته شده یکی از رفقای قدیم میشه چنانچه شهخبردارزار کهادش ها اشاره بهش میکنه که قوی ترین وجهشه یکی از رفقای قدیم میشه چناچه برداشت میشه از ذبیات و گفته شدم مقصد از ابوبک شخص خاصی نیست مقصود اون مخاطبی هست که این بیات را میخونه خوونه. اوابک رنده او توکه حالا از گفته آخر اینکه این ابوبک این مخاطب باشه ماها باشیم. چی میخواد از ما؟ ده دعوتك الى صحتك نجا بمعنى نصحه نصيحتك بند ان لو عجبت اگر اجراوبت بکنی دارم نصیحتت میکنم که تو این نصیحت عمل بکنی خب نصیحت به چی ما فيه حفظك لو عقلت الا ما فيه حفظك اون چیزی توشه اون چیزی توشه اون چیزی که بهرعت از این دنیاست که با خودت به اون اخرت چنانچه ما در حدیث داریم الا فهد آمد به ششاره خایم کرد ان الانبیا لم يورثوا درهم و لا دینار کانبیا درهم و دینار از خودشون به جا نگذاشتن تا اخر که بی فرمای رسول الله صلی الله علیه و سلم ولو اخذت بحظ وافر اگر علم انبیا گرفتی تو از اون بحره بزرگ توشه بزرگ را گرفتی اون ارث بزرگ انبیا را گرفتی اینجا توصیه البري بشي بون بحر بزر وون علم نصيحتت ميكونن بعلم نصيحتت ميكونن بون بحري كي با خودت ميبري از اين دنيا انسان هر چقد گنج و مال و ثروت جمع كوني نميبري ولي علم با خودت ميبري علم درسينته علم رو تو با خودت ميبري لو عقلته اكر عقل و شي نجهل ننادان نادان قدر علم شرعي رو نميدونه ولي عاقل بله ميدونه كي چه ارزشي علم داره چه علم داره مگر این نیست که علم شناخت و معرفتت نسبت با الله جل و علا را بسیار و بزرگ میکنه تو با علم اللهت را میشناسی تو با علم سخنان الله را و خطابش را درک میکنی بلاتر از این شریفتر از این چی هست؟ الله بزرگ، الله خالق یکتا حرفی با تو زده، سخنی با تو به تو گفته تو میگه اون سخن الله جل و را اونطوری که الله از تو خاصه درکش میکنی میفهمی این بهره بزرگه إنهاس كتوب وخدت أز إن دنيا مي باري لو حقلت حقر عقل باش إلى علم تكون به إمامة هفتمين بيت إلى علم تكون به إمامة مطاعا إنه إتا وإن أمرتا إلى علم تعبتت ميدان بسوي علم وانشيزي كبهره بزرگه كبه وخدت مي باري علم منظور أز علم علم شرعي إلى علم تكون به إمامة علم كبه أنتو إمام بشي أز دعاه يمؤمنين از دعاهي عباد الرحمن كي رب نهب لنا من أزواجنا والذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يعني كي إماما وجعلنا للمتقين إماما ما رأب رأي قرار بده رأي المتقين قرار بده في شواية متقين وش يعني إلى علم تكون به إماما دعوتت بده من سهتت بكونه بون علمك بخش إمامي بشي امام و پیشوایی بشی. پیشوایی برای کی؟ برای متقیان. یعنی چی؟ الان یک فردی. ماشین آخرین سیستمی سواره. عملی معتاده. مشروب خاره. دوزده. پولدار خیلی سربت ولی کن همه ازش بد میگن. فلانی دوست مال فلانی رو خورده. انگوش نماز شده. در خیر یا در شر این پیشوا و الگوست در خیر یا در شر در شر، امامی برای متقیان نیست برای اهل شر، خودش هم شر، مال دنیای داره بهترین ماشین هم سواره، ولی که شره، کسی ازش خوبی نمیگه. شخصی در حق والدین خودش بده، پدر مادرش، ظلم میکنه، پدرش یا مادرش رو از منزلش بیرون انداخته. این امامه؟ امامه در شر. همون طور امامی است در شر، این امامی است در شر. ولی که ما باید از الله چه بقایم امامت در دین و در تقوا، انگشت ما بشیم در تقوا و فلانی چقدر احترام پدر مادرشو داره نماز ازش فوت نمیشه چقدر معذبت بر نمازش داره بر طاعتش داره علم سبب میشه که تو اینچنین ازت یاد بشه به خوبی نه به شر به خیر و خوبی علم شریفه صاحب علمم شریف میشه شرافتت به علمت علمی که در تو اثر بذاره علمی که تو تسکیه بشی تو خوب بشی تولگو بشی یاد خوبی ازت بشه چنان چه گفتیم این حدیث اومد نظرتون باشه من و تویم که فردا بر دوش هم میشیم مردم چی میگن انسانی خوبی بود یا انسان بدی چی میگن در باره من و شما کی هست که این سرنوشت رو ورق میزنه این خاتمه رو ورق میزنه اون لحظه ای که روی دوش هم میشیم خودمون هستیم با چی این سفر درست و خوب ورق میخوره به خوبی سر میشه از ما یاد بشه با علم شریف میشی But this is the first statement from Abu Ishaq Elviri Umar al-Khattab, by the way, from Mekka, from one of my friends His name is Yadam Nish He asks a question He says, for them, for some kind of region حل did they bring back to them and make them ابن make them change, make them change? He says, for some kind of religion, make them change and عمران خطاب رضی الله عنه روبش میکنه میگه نگاه بکنید این شرف علمه فلانیه علم به شریعت داره ولی که مولا هست برده آزاد شده هست ولی که نهل دینه بخاطر همین او را گذاشتم که مرجع مردم باشه مردم مشکلات خودشون بیان پیشش برای حل و فصل بعد عمران خطاب روبش میکنید نگاه بکنید این حل چگونه آدم را شریف میکنه برده بوده آزاد شده ولی که الان شریفه الان اهل علمه علم نگاه نمیکنه که تو پوست چه رنگیه بلال حبشیه سیاه ولی که تو اسمش الانومات بر سر زبانت جاری میشه چی رضی الله عنه الله ازش راضی خوشنود بشه کسی دیدید که از بلال حبشی به بدی یاد بکنه چرا کسی ازش به بدی یاد نمیکنه برده بوده سیاه هم بوده میگه شرافت به سیاهی و سفیدیه تو پوست سفیدت تو را شریف میکنه نه والله پوست رنگت حتی نسبت ابو جهل سيد از اشراف مكهس قريشيه ابو لهب هميتو اموي رسول الله صلى الله عليه وسلم از اشراف نسب الشريفه بالك اندر دنجي شريفه نعم نسبش به دردش كرد خير نسبت به دردت نميپوره نگاه نسبت نكن نگاه مالت نكن مال تو هر چقد باشه بيشتر از قارون نميشه مردو حسرت مالش رو مي‌خوردن زمان فرعون حتى فرعون هامانم فرعونم با اون ملكش نمرودم ولی کی شدن عاقبت امرشون چی شد بعد از عقوبت الله جل وعلا و غرق شدنشون نابود شدنشون چی شدن مردم چی گفتن شکر و سپاس الله را گفتن بر زبان آوردن یا نه الحمدلله که الله ما را از اونها قرار نداد ولی کسی نمیگه که الحمدلله مثلا در مقابل پیغمبری است پیغمبران عالمی از علمای دین مثلا شخص میگه الحمدلله که ما فلانی نبودم ابراهیم علیه الصلاه و الله جل وعلا اسم یاد نیکش را همچنان باقی گذاشته کسی از کس ابراهیم خلیل الرحمن مبدئ یاد میکنه شما بری کتابا رو میخونید اون کتابایی که درش اسم یاد ابراهیم هست یا اسم یاد نوح هست یهود ادعا داره که ابراهیم و نوح است نصارا مسیحا ادعایان که ابراهیم و مال ماست و نوح مال ماست اون ادعا داره ابراهیم مال خودشونه در نتیجه چون ابراهیم مال خودشونه پس دین یهودیت حقه و لیکن الله جل و علا در جوابش چی میگه در جوابش میگه ماکان ابراهیم و یهودیان اولا نصارانیه نصارا جو چرا شرک شدن یهود لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه تشا للشك شلون الناسره ولي ابراهيم جي ولم يكن من المشركين ابراهيم ما من المشركين نبوت الله صراحه ان بيغمره اشا تبرئه مكونه من ادعاء اليهوديها والدائنصرانيهه ترى ميخوان ابراهيم را بخودهم يكسبون شلون ابراهيم ياد ونام نيكي از خودش بجا گذاشته بود با چی با علم با علم چه علمي علم با الله جل وعلا پدرش خونه بیاد پربانی بده بره در جشن اونها شرکت بکنه ولی که ابراهیم علیه و السلام قبول نمیکنه نه این جزیره خود قصه ابراهیم رو همه شما میدونید براءتش از بودها براءتش از پدرش همه ما میدونیم این علم ابراهیم علیه السلام نسبت به الله جل وعلا سلامتش شد بزرگیش سلام افترافتش و قداستش و مكانتش پس علم خسا علم بتوحيد علم بالله بأ جل وعلاه علم بسخنانش انسان راشريف ميكون شنانش ابراهيم عليه الصلاة والسلام شريف شو. الله جل وعلا ده القرآن وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا منهم أئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا يعني چه يهدون بأمرنا امامها اظنها قرار دادين اماما وين از پیغمبران و اتباعشون امیه حسن و حبودا چطور با چیه يهدون بامرنا ایرشدون بامرنا بالوحي، بالقرآن والسنة بالحق امر الله جل وعلا يهدون بامرنا نبا قفته من نبا خواب من نبا تخمین من نبا داستانی که انجا ما قدم بگم با جهل نا با حق این حق ارشاد من مخاطر با قرآن باشه یا با سنت باشه دعوت من به حق باشه یهدونه به امره با امر الهی وحی الهی انسان امام میشه با وحی الهی تو امام نمیشی در دین در تقوی بدون علم شرعی بدون درایت تو فهمت نسبت به حساس شرعی چقدر از فیلسوفان بودن چقدر از دانشمندان علوم دنیا بودن رفتن نامی از خودشون نگذاشته. But the world is not a known word for её itself. They are called by new word, it's something that the name is Dieu is born from itself. What is the meaning of that publicril jamais so far from the public land who is incidental, his doctrine is related. The Lord Shut up to the Nasir Shai Allah Lord, in this entire book called íll not اونها عالم به دین شدن و راه هدایت خودشون هدایت شدن و دیگران هم هدایت کردن یهدون ایرشدون امامی شدن که دعوت میدن مردم را به سوی دین و خودشون هم هدایت شدن و المؤمنون بهی من هم علا قسمین امتن یهدون به امرین و اتباع یا امامن پیشوان دیگران اونها را الگوی خودشون قرار دادن از اونها پیروی و رهروی میکنن و یا این پیروانی از اونها هست إنها هستن كدر إن آية ورد ومشمول إن آيه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا قال إن قسمات خيلي مهمة الشيخ عبد الرحمة سعدمي قال والقسم الأول أرفع الدرجات بلتنين درجات درجية عبالية كي ديقران دعفت بدي بسوية راحق قال والقسم الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة وهي درجة الصديقين بعد منزلت و درجه نبوت بالاترین درجه درجه چیه دعوت دادن دیگران به سوی دین با علم تعالم بشی که دیگران را ارشاد بکنی و این درجه چیه درجه صدیقین این منزلت جایگاهه نزد الله جل وعلا علم تو را شریف میکنه حالا این بحث امامت بحث امامت که انسان چگونه این درجه امامت بهش نائل بشه برسه بهش در کنار این علم دو تا شرط گذاشته ابن قیم این جمله را همیشه از ابن تيمیه نقل میکنه رحمه الله اجمعی الله اكبر اسمشون مياد ترحمه بشون میکنه این جه امام دار دین بودن بخوبی ازشون یاد کردن داری ترحم میکنه ميگه رحمهم الله چی ميگه ابن قیم نقل میکنه از شيخش؟ ميگه بالصبر والیقین بعد ذکین آئی رب ميگه شکل اسلام ميخوند این چنین گفته و ميگفت بالصبر والیقین تنال الامامة في الدین بالصبر والی وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا علم سب ميخاد همونطور که قصه موسی گفتیم در درس اول اهل صبر ميخاد تحمل ميخاد مشقت و سختی داره الله مفتی و مجانی چیزی بهت نمیده تلاش ميخاد زحمت ميخاد وقت ميخاد باید بذاری خسته بشي والذين جاهدوا فينا لنا هديناهم سبلنا والذين جاهدوا فينا اي مجاهده راه الله است ميخاد If you don't have an ad-d'a, love with Allah, love with religion and knowledge, it's just an ad-d'a But what? It's a movement in that ad-d'a It's a word that you don't have a word But the human being in religion is with patience in the form of knowledge And the second one is with confidence And the Bible is in our verse They are the میتونید حافظ قرآن بشید الان یا نمیتونید سخت یا آسونه آسونه یقین دارید یا شک میگید اگر شک داری نمیتونی یعنی نمیخواهی بل اگر یقین داری به سخن الله جل وعلا اون کسی که قلب دستشه قلوب العبادی بین اصبعین من صابق رحمان اگر یقین داری که قلب دست الله همون قلبی که به بخاری داده به تو هم میده عطا میکنه فهم و درکت رو باز میکنه. اگر الله جل وعلا اعتماد داری، الله جل وعلا به تو این موهبه را عطا میکنه. ولی که وقتی که تو شک داری، اعتماد به الله جل وعلا نداری، الله چطور بید بده؟ بس ما باید اگر میخواهیم به این درجه و این شرف رسیم، باید دنبال علم شرعی باشیم، و علم شرعی هم نیاز به سبر و یقین داره، علم شرعی. دو بحث اماماتوتو. و اید ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهون امام قال انی جاهلک للناس اماما ابراهیم امامه گفتیم یهودان و نصارا هم ادعا دارن که امامشون راهبرشون و پیرو بمونن الله جل وعلا علا این شرف و جایگاه رهبر ابراهیم علیه الصلاه و السلام داده و اینجا هم قال لا ينال عهد الظالمین ولیکن الله جل و علا میگه چی این عهد را برای ظالمین نمیدم میخوان هر چقدر مال داشته باشن ثروت داشته باشن جاه و مقام داشته باشن این مقام را اونهایی که اهل معصیتن اهل گناهن ظلمن این مقام امامت اونها به دست نمیارن نمیتونن حافظ قران بشی فردا فراموش میکنی بخوای موسیقی گوش بدی از این طرفی میخوای حافظ قرآن بشی نمیتونی در این قلبت سخن الله با سخن شیطان با هم دیگه جمع نمیشن گناه و معصیت با و عبادت با هم دیگر در قلب جمع نمیشن قال لا ينال عهد الظالمين نتونستی از گناه پرهیز بکنی دور بشی چشم به نام گوشت به نام حرم و الی آخر بدون که الله جلل علا به تو این مکانات رو جایگاه را عطا نمیکنه نمیتونی بهش برسی با گناه معصیت نمی نمیشه به این مقام رسید به این شرف رسید اونم شرف امامت در دین این لیاقت با وجود تبهکاریشون یهود با اون اوج تبهکاری و عصیانشون سنگ ابراهیم را به سینه‌می‌زنن چقد جایگاه این ابراهیم علیه الصلاه و السلام بالا است و بالاست نزد الله جل و علا روهمنشو ندارن ولی دعاشو دارن روح شما غیر الله جل و علا میگیم این راه ابراهیم غیره ملت ابراهیم حنیفه راه ابراهیم حنیف و دور از شرک این بت‌ها و این کسانی که شما دارید میپرستید از عذیر و از عیسی راه ابراهیم غیر از اینا بوده ابراهیم علیه إلى علم تكنوا به إمام بس بعلم امامت در دین روخاهی داشت و یاد نیکی راست خدای خاهی گذاشت مطاع مردم از طرفش نمی خواهن داشت هفت تا گوش میدن زمانی که دعواشه میشه سر زمین و مزرعه و باغ و دیدم تجارت و کاسبی به کی برمیگردن به او باش کوچه و خیابون به متعاد و مشروب خور برمیگردن مردم محتاجه کی اند گدای کی عالم تو به یا فیصله بکن تو از الله میترسی چون کسی که از الله نمیترسه حقو به حق نمیده یا رشوه میگیره یا نمیدونم نگاه میکنه کی به دردش بیشتر میخوره مثل اون چیزی که تو انتخابات میشه چورهای شهر روستا برای دهیاری و برای نمیدونم استانداری برای هر چیزی که میخواد باشه کی بیشتر میتربه ولی که در امر دین به کسی نگاه نمی کنه که تو چه لباسی پوشی چقدر پول و ثروت داری نه نگاه به تقواات میکنه نگاه به اون اثر علم در تو میکنه اگر اون اثر علم رو در تو دید حتی اگر فقیر شخص اون شهر و اون دیار و سرزمین باشی به اعتماد میکنه این اعتماده مهمه علم سبب میشه که تو معتمد بشی ولی که نگر جاهل بشی دیگه اون اعتماده به تو نمیشه کسی پیمانکاری ساختمانش برای بتون و آرموتوربندی دست گچکار میده گچکاری که هیچی از آرموتوربندی و از نمیدونه. ریزی نمیده. چرا؟ چون جاهله به این کار نمیتونه بهش اعتماد بکنه معتمد نیست مثل مهندس که بهش اعتماد نمیشه شخص مریض مشکل کلیه داره قلب داره بگو بیا عمل جراحی رو انجام بده بهش اعتماد نمیشه همین چینین در فیصله کردن در امور منازعات بین اشخاص و افراد خوصا در امور مالی و غیر حلال و حرام اون کسی مطاعه که اهل علمه نه جاهل درايت داشته باشه به علم شریعت الهی مطاع ان نهیته وان امرته یعنی تو به این جایگاه میرسی که در امر و نهی ازت پیروی بشه مقبول بشی نزد مردم معتمد بشی و این همون اولو الامر مردم شدن که جمهور ائمه میگن اولو الامر که الله جل وعلا از ما خاصه که از اونها پیروی بکنیم اهل علم قبل از اینکه تو پرانتز بحث حاکم بشه اولین کسی که در اولو الامر واقعه عالم حقیقیه بدینی والله جل وعلا عالم حقیقی چون عالم داریم غیر حقیقیه لباس پیشیده و بوی اسائل نبرده عالم حقیقی تو یک مناظره با یک دندری خدیه داشتم بحث می‌کردم بحث ائمه شد مثل شافعی و احمد و مالک ابو حنیفه در مخالفتشون با علم کلام با وجودی که حکما عصر مثلا امام احمد الزام میکردن مردم را به قول معتزله در اینکه قرآن سخن الله جل وعلا نیست چی گفتم مننده خدا گفت که اونها درباری بودند بخاطر موافقت با و حکام حک دادن سبحان الله اما احمد شلاخ میخوره زندان میفته بعد آخر این بنده خودم میاد میگه که اینها درباری بودن نه والله اینها عمه خدا بودن تقوا بودن حاضر نبودن که دین فروشی بکنن بخاطر مال دنیا و ثروت و جاه و مقام دینشون رو عوض بکنن بیان پاچخاری حکام بکنن حتی از توریه استفاده گفتم بیان توریه استفاده کن به مام احمد گفت خیر هرگز امام شافعي كتاب الرسالة شو بريد تخوني از اول تا اخر رد بار معتزله است بحث خبره و وحده و ديگر در كتاب الرسالة سخت مخالفت ميکنه با اله كلام اس كسي نميدرشيدن علم سبب ميشه كتو از جز الله جل وعلا نترسي بر اساس بين رتبه انما يخشى الله من عباده العلماء حقيقة ترز را از الله فقط داشته باشي نه غير الله جل وعلا برأي ابراهيم مهم نبود كي نمرود قدرت داره چقدر آتشی بربا کرده براش مهم نیست چی براش مهمه رضایت الله جل وعلا بر منجنین میبندنش و پرتش می‌کنن تو آتش براش مهم نیست بندازن تو آتش چون الله رو در همه چیز رو داره براش مهم نیست این آتش چی باشه آتش هم او را بسوزونه هر سختی را به دوش گرفته هر سختی که بخواد در مقابل این علم بیاد استقامت بر دین صبر بر دینش بخواد بیاد هر سختی بخواد زندانش بندازن تو آتشش بندازن علم براش شریفه ارزش داره و عمل به علمش کوتاه نمیاد در مقابل اون علمی که داره این جایگاه و این منقاتی که ابراهیم داره همینطوری نیست لازم نیست که تو صدها کتاب بخونی من اینجا ریشامو چهار تیقه بکنم بعد بیا بگم رسول الله صلی الله علیه و گفته اعفوا اللحا ریش بذارید این یعنی چی یعنی انما یخش الله من عباد العلماء این یعنی ای لقد كان لك في رسول الله اسوه حسنه برای شما در رسول الله صلی الله ادعاشو بکنم خیر اینجا تو سری بخورم دین به نیست پیری و رهروی از حق تو باید راهروی حق باشی و حرفی که داری میزنی اگر الله خواسته که تو باید تابعش باشی تابع پیغمبرت باشی رسول الله صلی الله علیه و وسلم گفت عفو لحق سرت چش زندانم بخوام بندازن از کار بیرونم بکنن برای مهم نیست مردم چی میخوان بگن برای مهم نیست چی قضاوت میخوان بکنن برام مهم نیست چی برای مهمه امر الله امر الله برچیه و ما ينطق عن الهوار. پیغمبرمون هست که با هوای نفس خودش حرفی نمیزنه اگر حرفی زده اگر گفته ریش بذاری از کجا گرفته؟ از وحی الله جل وعلا الله برش وحی کرده و یجلو ما بعینک من عشاها و یهدیک الطریق انضللت اذا ضللت این بیت هم این گفته شده و تجلو ما بعینک من غشاها هم غشاه ها گفته شده هم عشه ها گفته شده حالا چه فرقی داره چه معنی داره خواهیم گفت و يهديك الطريق اذا ضللت ويجلو ما بعينك ويجلو ما بعينك اون چیزی که جلو چشمت را گرفته اون پرده که جلو چشمت اومده من غشاه اون غشاه و اون لایه اي پرده که جلو چشمت هست اون علم سبب میشه که اون پرده برداشته بشه این فایده علمه. سمره علم است علم رو داره میگه علم که من دارم توصيه ميکنم چیکار میکنه با تو علم پرده را جلوه چشمت برمیداره داره و گفته شده و یجلو که من عشاه عشاء غطا حس به اون معانیات اون پرده ای که جلوه چشمت برداشته میشه از جلوه چشمت این پرده چیه که جلوه چشمیات جهل با چی برداشته میشه با علم پس دنبال علم باش که علم پرده جلوه چشمت رو برمی داره پرده جلوه چشمت رو برمی داره اون چشم طاییکت ضعیفتره، بینامی کنه، روشن می علم نوره. همونطور که الله جل وعلا علا میگه، ولی کن نورا، ولی جعلناه نورا. قرآن نوره، وحی الله جل و علا نوره. الله اللهم صل الله عليه وسلم پیغمبرانو بستارگان نورانی که راه رو نشون میدن تعبیه میکنه. اصل الله صل الله عليه وسلم میفرمایه من سلک طریقان یطلب فیه علم. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه قال روايتين مختلفه ان يك از الفاظي که من دارم میکنم من سلكت طريقا يطلب فيه علما كسي را علم را بگيريد شما مديد براي علم پاداشش چيه قبلا در اون حديث قبلي داشتيم که جلسه گذشته اشاره بهش كرديم اون حديثي که درش اشاره شد به فرشتگان ساياحين که سیاحت ميکنن دنبال حلقات ذكر ميگردن اونجا اشاره شد کسانی که دنبال طلب علمان در حلقات علمی شیدن الله جلل و علا میگه شاهد و گواه باشید بر این که چی؟ اشهد و انی قد غفرتو لهم شاهد و گواه باشید که من اونا را بخشیدم گفتم فلانی باشید نیست قال علای اشقا بهم جلیسم الله میگه به گواه باشید اونا را بخشیدم اینجا یک شرف دیگر تلبى علم كاردي الله راهت رب بهش بس في بهش أصنم سهل الله لك طريقا إلى الجنة دريوايتي وإن جاء سلك الله به طريق إلى الجنة راهب بهش رب الله جل وعلا أصن وأسدم وإن الملائكة سبادش علم وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب علم بريء طالب علم ملاك بوله رفعش يكون الجتور الله عليه رضا بما يصنع وإن العالم لا يسغفرو له من في السماوات فاداش بعدي ناكل چند chantsوا فاداش طالب علم بهشت دو تسخير ملوكه س وإن العالم على تلاب علم كهادي عالم شو لي كي الله خايدش وإن العالم لا يسغفرو له من في السماوات والأرض هرآن شكل در أسمونا در زمينة برد تلاب ما اغفرت في جوف الماء حتى مياه در دريا In the mountains, in the mountains, in the mountains, in the mountains, in the mountains, and even in the mountains, they will give the Lord a blessing and a blessing to God. And it is the purpose of the world to the Abed. What is the difference between the world and the Abed? As the purpose of the mountain, the night of وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَتُ الْأَنْبِيَاءَ علماء ورسين پیغمبراناً وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لم يورثوا درهماً ولا ديناراً إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر كنان چه داشت پیغمبراناً مزخوشون عرص موليكي نگذاشته عرصشان جه علمه ان ان الله بي اموال دنیا را بده ولی نداد برای چی؟ برای که اگر مال دنیا رو داده بود همه مسلمان می می‌شدن. ولی اینکه یک منزلی داشت که جای سجده درش نبود زمانی که همسرش درش می‌خوابید. ام البنین عایشه میگه زمانی که می‌خواست نماز بکنه دست می‌زد از پایم که پایم رو جمع کنم کجا بتونه سجده بکنه شب به تهجدش. این منزل کی بود؟ اشرف الخلق صحابه میگه می یا رسول الله خابری حسیر جا گذاشته روی تنم. بذات فرشی رو بگیریم روش بخوابی گفت که چی میخوام؟ از این دنیا؟ مثال من مثال کیه فردی اومده زیر درختی یه بکنه و بره چه میخوام از این درخت از این دنیاتو این پیغمبر ماست محمد مصطفی صلی الله علیه سلم. برایش دنیا مهم نیست که من از دنیا چی داشته باشم از زیورات و از غیر و ظالک برایش چی مهمه اون چیزی که درش و خوشنودی الله جل و علا برایش عطای الهی مهمه الله چی بهش از اون عطای محبوبش بده. از اون عطای محبوبش بده مال را بقارون و هامان داد و فرعون و جا و مقام و نمرود داد مال برای خوب بده ولیکن علم نه مال خوبانه این عطا عطای خاصیه بهره خاصیه الله بها هم اکاس نمیده و محروم هم اون کسی که ازش محروم کشه یعنی حقیقت محرومیت این که انسان از این دنیا بره حرف و سخن الهی را نفهمیده باشه علمی به شریعت نداشته باشه علمی به سوره فاتحه نداشته باشه سر نماز هزاران بار خونده باشه در عمرش ولی نفهمیده که چی میگه وقتی که میگه الحمدلله رب العالمی الرحمن الرحیم نفهمیده الرحمن الرحیم یعنی چی خیلی فرقه بین کسی که بفهمه چی میخونه و کسی که نمیفهمه بین شقی و السعید همین تفاوت کافیه چه کسی شقاوتمند و بدبخته و چه کسی سعادتمند و عزیز نزد الله جل و علا؟ علم تو عزیز میشی چون تو اون کرامت الهی را گرفتی، اون هبه الهی را گرفتی، اون عطای خاص الهی را گرفتی، تو با اون علم شریف میشی. خاصه الهی اصل این بوده که سخنانش رو گوش بدی و بفهمی و بهش عمل بکنی. نزد الله هم عزیز میشی. وقتی که عزیز شدی چی میشه؟ لا یزال عبدی یتقرب الی بناوافل حتا همچنان با نوافل و طاعت و عبادت بنده میگه الله جل و علا به من نازیک میشه تا اینکه او رو دوست داشته باشم خب الله الله رو دوست داشته باشه چی میشه صدا میزنی جبرئیل بیا در ها فلانی رو دوست دارم او رو دوست داشته باش جبرئیل ها رو صدا میزنه فرشتگان الله فرانی رو دوست داره افتخاره الله افتخار میکنه به تو بین اینکه دنبال علم بودی که چطور الله رو بپرستی چطور الله اون پرستیش را دوست داره چه پرستی دنبال علم شرعی بودی نهر خوبی که خودت به پسندی نه اون خوبی که الله پسندیده را پسندیدی بر خودت عمل کردی با اون تو میشه عزیز نزد الله جل والا با الله هم تو افتخار میکنه افتخارت در اینجا و این جایگاه با اون علمی که بهش میتونی برسی نه با جهد. کسی که جاهل چطور میتونه بفهمه که این نافله صحیحه بیاد نماز بخونه نماز عوابین نه که شیش رکعت بعد از مغرب 6 رکعت بخونه الله ازش قبول میکنه میپذیره خیر جاهلند یهدون به امرنا نیست به امر الهی نخونده با اجتهاد خودش اومده خونده فرقی نمیکنه تو بیای یک نمازی از خودت اختراع بکنی 6 رکعت بخونی یا بیای نماز فرضت را مثلا به جای بذای 4 رکعت زور بخونی 5 رکعت الله حضرت قبول میکنه یک شخصی بیاد نماز ظهر 5 رکعت بخونه بگی من 5 می میکنم قبول یا باطل باطل به دردش نمیکوره به جای 4 رکعت یا 7 رکعت میخونه باطل نزد الله ارزش نداره چون جهل درش ولی ای که اگر علم اون عمل شرف پیدا میکنه تو جایگاه نزد الله پیدا میکنی الله بهت افتخار میکنه در آسمانها ها محبت در قلب خلق گذاشته میشه سپس امون حدیثی که داشتیم که الله صدا میزنه فرشتگان در آسمان میگه سپس الله جلوه محبت اون شخصی که تابع سنت مصطفی صلی الله علیه و آله بوده پیرو راه راه رسول الله الله علیه و بوده محبتش را الله در دل خلق میگذاره مردم ازش راضی و خشنود میشن این عزته این خوشبختی ولی در مقابلش بدبختی چیه جهله تو ندونی که چطور به این مقام برسی به این مقام خوشبختی به این مقام خوشی خوشی مولاتر از این که انسان نزد الله جلب وعلا عزیز بشه الله ازش یاد دینی که داشته باشه بدبختی چیه بدبختی جهله خاریه ذلته خفته صرف سرفرازی نیست علم تو را سرفراز میکنه یرفع الله الذين آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات رفعت بيدهم در دنیا قبل از اخرت پس علم سبب میشه که تو پرده جلوی چشت برداشته بشه و جلو راهت روشن بشه اون چراغ علم را به دست بگیری هم خودت هدایت بشی هم دیگران را هدایت بکنی و این چراغ هدایت را گرفتن سبب بشه که روز قیامت بر سر پل سرات در اون تاریکی محشر بر پل سرات الله جل و علا نوری عطا بکنه به خاطر اینکه در دنیا دنبال نور بودی دنبال علم بودی در این دنیا دنبال علم بودی دنبال روشنایی و نور بودی دنبال ارث پیغمبران بودی الله هم پاداشت میده مثل همون بر روی پل سرات نور رو بهت عطا میکنه که بر روی پل سرات هدایت بشی چه کسانی اون نور هدایتشون بر پل سرات خاموش میشه عصات و منافقی فما له من نور نوری ندارن دیگه که اونجا بخواد از روی پل سراتی که از مبارکتر هدایت بشه از همونجا باید بیفتن و حساب ببینه. پس این نور سبب میشه که تو از عذاب الهی رهایی پیدا بکنی بر روی پول سرات هدایت بشی و در جهنم نیفتی غیر از این پاداشه که در این حدیث شد راه به بهش برات آسوده میشه آسون میشه یکی از این راه همین جاست که بر سر پول سراته من طریقانی طریقا و فیه علم سلک الله به طریقانیل الجنه این راه ده با این علم سبب میشه راه بهش برات آسون بشه بعد جهنم الله نجات پیدا بکنی علم این حقیقت سعادت منیه که عذاب نمینی نجات پیدا بکنی از عذاب خشم الهی مگر سعادت جز اینه سعادت جز اینه خیر، سعادت مندی خوشنودی الله جل وعلا نسبت به ما الله از ما خوشنود و راضی باش و این خوشنودی و رضایت الهی بهش نمیرسیم جز با چی و علم و یجل ما بعينك من غشاها و یهدیک الطریق اذا ضللت و یهدیک الطريق. راه بهشت را میده اگر گمراه بشی اگر منحرف بشی، اگر اشتباه بکنی، راه کجبری این علم سبب میشه که تو هوشیار بشی به فکر خودت باشی الله همچنان همه ما مهلت میده همچنان با اون چیزی که شاید به درد ما بخوره نجات بده علم شرعیه که شاید حتما ما را نجات خواهد داد ولیکن کهیه و چطور و چگونه دست من و شما نیست مثل بسه برادران یوسف علیه الصلاه و السلام ظلم کردن تغیان کردن الله هم جل علیه هدفش این نیست که اونا در اون ظلم و تبهکاریشون باقی بمونن الله میخواد بندگانش همه توبه بکنن بر بگردن با الله جل علیه زمان میگذرد میگذرد میگذرد تا اینکه جلوه برادرش میسن با اون دعوت نیکی یوسف علیه الصلاه و السلام سبب اینا هدایت بشن با اون عفو بخشش یوسف علیه الصلاه و السلام با اون عمل النیک و یوسف علیه الصلاه و السلام اینا همه تاثیر داشت در توبه و رجوع برادران یوسف به حق بتلاوه بخشش و مغفرت کرده از الله جل وعلا همینا تاثیر داشت ماها هم باید چنین باشیم مثل یوسف علیه الصلاه و السلام علم تر روشن میکنه و دیگرارا را با اون علم روشن میکنی اون جاهر روشن میشه با اون علمت و سبب میشه که رجوع بکنه به الله جل وعلا تو چراغ روشنی تو هستی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تو را تشبیه میکنه علم شرع باش دنبال وحی باشی مگر نه، تون ستاره خاموش آسمانی و منه في نادی کتاجا و الجمال کالجمال اذا عریتا و بعض از نسخه اذا اختربتا وتحمل منه في نادی کتاجا من اینجا غریبم بلی که شما به من ارزش دادید اومدید اینجا نشستید توی این حلقه توی جلسه هیچ کسی حرف نمیزنی جز من چون فکر میکنید من بهتر از شما میفهمم و یه چیزی دارید از من یاد میگیرید وجهت من عالم نساميك طالب العلم مش ثانيست همین چنت قلم حدیثی که بلدم سبب شده که اینجا بشینم و تحمل منه في ناديك تاجا تلميون القومت وغير قومت تاجي بر سرت تاجي از عزت عزیزم نزدش ماگر عزیز نبودم پیش من نمیریش اسید میرفتي پای کاسبی خودت شما هستید که تاج بر سر من گذاشتید منو اینجا نشوندید و دارید حرف مرا گوش میدید عزیزم کردید علم ادمو عزیز میکنه هر چن علمت اندگوشن علم من صار حاسس بيكونه لازم نيست كي انجا بشيني لازم نيست كي مثل من انجا حرف بزري لا همون تو قومت همون تو خونهت همون تو منزلت همون بين فرزندت تو عزيز ميشي حتى ميانه زن وبچه تو خيلي ها مين الان چيكار كنيم بچه‌هام حرفمون گوش نميدنن فلان اين توره و اون توره و تحمل منه في هذيك تاجن علم If تو پای بند علم شدی دنبال علم شدی عزیز be حتی بین between و بین and بین فرزندانت and the families And if the world is born, you will be born And if the world is born And the clothes of the quid, it will be good The clothes of the quid, the knowledge of the quid It is a place of the quid And the clothes نگاه میکنه چقدر علم داره نه نگاه پولش میکنه نه نگاه نسبش میکنه برده است ولی ایک علم داره چقدر از علما داشتیم از بردگانی بودن که آزاد شدن یا پدرانشون برده بودن عطا حسن بسری غیر که اسم یاد نیکی از خودشون به جا گذاشتن از علمای محدثین علم شریعه از شریف میکنه مردم محتاج علمن مردم محتاج علمن یک مسئله اینجا باید بشه، گفتیم برای رسیدن به سعادتمندی ما نیازی به علم شرعی داریم درسته حالا سر این سعادت مندی در چیه یعنی چطور با علم شرعی به این سعادته برسیم ما نیاز به الگو مثال داریم تا این که بدونیم این سعادت مندی چیه و چطور میتونیم بهش برسیم درسته سر این سعادت در چیه علم مگر چیکار میکنه این سوالو من بعد ازستون از بپرسم بعد جواب من بدید میدونم الان از صبح که درس شروع شده یک سر مشغولید شاید الان حضور زهن نداشته باشید ولی در ضمن لابله درس بهش اشاره شد مثال یوسف رو من زدم درسته یوسفی برادران در نونه حالی ظلمش میکنن در چاهش میندازن سپس به عنوان یک برده فروخته میشه سپس زندان میشه سپس بر تخت وزارت پادشاهی پادشاه مصر میشینه اونجا و خزینه های مصر به دستش سپرده میشه یوسف علیه الصلاه و السلام زیباست یا نه رسول الله صص در باره میگه میگه در معراج رفته بودم یوسف دیدم نصف زیبایی زیبای خلق را داشت از بس که زیبا بود جمال ظاهرش به یک طرف جمال قلبش طرف دیگر از اون سعادت مندی که الله جل وعلا و شکوفایی که از ایمان و محبت الله در دلش گذاشته بود این سر خوشبختیه خوشبختی این نیست که چه ثروت مالی داره خوشبختی چیز دیگه است خوشبختی یوسف کجا هست اون زمانی که جلو بزلیخا میسه و اون زمانی که جلو برادرانش میسه چی گفت انه ربی احسن مثواي چلو بز علیขา چطور خیانت بکنم به پروردگارم احسن مثوای شنین مرد ارنوز و نعمت قرار داده بعد بیام من دچار این گناه و معصیت بشم این یک جا جای دوم در قصه یوسف قسمت آخرشه وقت احسن نبی اذ اخرجنی من السجن الله در حق من چقدر خوب زمانی که مرا از زندان آزاد کرد یوسف کل قصه و داستانش چیه رضایت خوشنوش دید نسبت با الله الله را خوب شناخته با الله و اون سرنوشتی که برایش ورق زده رخوب خوب می‌بینه این سر خوشبختی خوب دیدن الله جل وعلا در اون مقدراتش چون علم به الله داره چون می‌دونه الله چیه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مؤمن میدونه وقتی که میگه الرحمن الرحیم کی رو داره اینچینین وست میکنه الرحمن الرحیم کی رو داره ستایش میکنه از کی داره اینچینین با تمجید و عظمت یاد میکنه و میگه الحمدلله تمامی حمد و ستایش ها و سپاس از آر الله که الرحمن الرحیمه نهایت مهرورزی و مهربانی رو داره حالا برو پیش اون سروتمند مصاحبه کن از زندگی درازی هستی؟ نه بچه هم معتاده، نه زنم مریضه، نه زانوه هم تختخت صدا میکنه، نه با این درد مریضی قند و فشار خونم بالا رفته. گلائی ها و شکوا ها کمی ها زیاد؟ زیاد کفران نعمت. انگار که الله جل و علا نعمتی به اونها نداده. این بدبختی یا خوشبختی؟ ثروتمنده ولی بدبخته. چرا خوشبخت نیست؟ چون یوسف نیست، چون الله را در حقه خودش خوش ندیده خوب ندیده اون سرنوشتی که براش الله برق زده نسبت بهش راضی نیست قانع نیست به اون مقدرات الله جل وعلا علم میشه که تو الله را درست بشناسی و بفهمی به شناخت داشته باشی به مقدراتش تقدیراتش شب میشه که تو الله را نسبت به خودت خیرخواه و دلسوز سوز بشمری والله لطیفم بعباده همیشه که رو باشه الله خیرخواه بندگانشه والله لطیفم بعباده الله لطيف ياسنيس لطف تولد حق من شبانا ان لطف ليس كي انجا ما بشينين از اين درس هيچي ياد نگيريم جز حقيقت اين الرحمن الرحيم بودنه الله جل وعلا اگر هيچ چيزي نميفهميديم و نميشيديم جز اين كه معناي اين دو تا اسم و وصف الهي را اينجا بش نمين کافي بود چون حقيقتش ما غافليم در غفلتيم سر نماز ميسين فقط داريم ميگيم به زبان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فقط گفتنه ولي كه قلب و اون وحی و اون قرآن سیراب نمیشه اون قلب مشکل داره احساس تشنگی نسبت به وحی الهی نمیکنه دنبال علم نیست چگونه احساس خوشبختی بکنه تو وقتی احساس خوشبختی بکنی خود تشنه ببینی تشنه وحی ببینی اونجا هست که اون باران وحی زمانی که بر قلبتو باریده میشه احساس خوشبختی میکنی احساس سربلندی میکنی اون خوشی را لمس میکنی مثل یوسف علیه السلام مهم نیست که برادران چه قضاوت میکنن بگن دوز انیس فقط سرق اقو له من قبل بگن بیش که دوز بوده یا ظالم بوده یا هر چیزی بهش نسبت بدن از خودش که مطمئنه برای مؤمن قضاوت دیگران مهم نیست چی مهمه قضاوت الله جل وعلا نزه الله چه ارزشی داره چه جایگاهی داره و اون جایگاه هم نزه الله و چی میرسه بهش و علم خیلی راحته به خاطر مال دنیا شخص بیاد پشت ماشین بشینه و بشکه های از سخت را برداره جون خودش را به خطر بندازه با جون خودش بازی بکنه بره به مرز خصه و جان جانفدایی بکنه اندک مالی. ولی برای علم شرعی خصه شدم بری برای علم شرعی نه دولت اطلاعات برام میخواد نمیدونم فردا بازجی میشم نه فردا میگن تو سر کلاس جوهری بودی نه فلانی با فلانی داشتی میگشتی فردا بازخواست میشم و اله آخر هزار تا بهانه میتراشی تن و جانت به خاطر علم شرعی میلرزه به خاطر یک حرف حق زدن میلرزه جرأت نداری بگی که تعویذ شرکه رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند ان التمائم شرک چرا چون مله ها بر علیه فلان میکنن و گزارشت میدن و بر علیه شات گزارشی رد بکنن و فلان بشه و بهمان و بسیار بشه تو دین الله جل و علا ترس جانت را گرفته فرا گرفته حالا بیا تو دنیا و مال دنیا شخص ترس را کنار گذاشته انگار که اصلا هیچ خطری او را تهدید نمیکنه نیاز به مراجعه داری اگر ما همت اون قاچاقچی رو داشتیم والله سرزمین ما آباد بود از اهل علم اگر همت اون قاچاقچی را داشتیم که جان خداشون چنان به خطر مینداخت اون چنان سخت میکوشید همه شما حافظ قران بودید درست میگم یا اشتباهه اقرار به کوتاهی فضیلته مقر به تخسیری و مش ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين فضیلته اعتراف به کوتاهییت به تخسیرت به درگاه الهی گویا سوک الجمال واذا اغتربت گفتیم در بعضی از شما آمده در غربتتن اون دین تو را شریف میکنه و عزیز میکنه پنکنا به حمد سبحان الله وبحمده صلی الله محمد و آل محمد